گرانی عزیز و خوشویستو هوریانی کتب باشترین هوری صلوات تن لیبه خوشحالین لبشی 66 خوین نوی کتب چشتی مجوری حجاری مکریانی حتی نولاتن فرمون لگل حجر مکریانی بر دوام لسر گرانهای بسرعت جانی خوی. حجار دلعت. زرکاز له ملاوا ارزاق و درمانو و شایدی نه. بته بته احمد توفیق با هاولانی و زوری خدمت کرد. زور چالکانه خوی دگند سنوری ایرانو کلوپالی لازمی پیدا کرد و دگر روا. لسرت کانی شرده شوید دگل بارزانی چویندم چوم. چنانچه کی زلامی پشداری هات بون. شکایتی نلاملا که ایمویستو ماند در کپنجره مدرسکان قلادزه تالانکین پیش مرگنه هشتوه برزانی زوربه تو ربو گوتی شیخ جونید خبرم های تو حوت رجلو پیش چوی سولیمانیو فرمانده دولت دیوا. ایستا دو اگر برانش ده هاتوی در کپنجره مدرسه بری شودرنگانک هاتینو لرگه بوم گیراوکا سالک خبر به سلطان عبدالحمید دادن والی بغداد بغدا خلق پیامیک به حال دعوان دنیاره. اگر آم خسر از بی، والیم باه دکلکی بخو بام بیانا. کبرد دقت بعدا، خبره که از نیوا. زورتر مجلس دگل پیامی سلطان کرما. عربک دیت جروداله، جنابی والی. چوار لیرا با کبرای کی چرچی قدر دارم. جار نیم بیدم وا. لسر رجی کرما، همروج دعوان لیکا. جندرما بنیر بعد حبس داده. کامن پولم دادی و قرض کیده دم و آواز بردی د. والی سلطان دلیه برز. اگر بتوانی تو اشاره بکی کبود ترجمه کنم کابره عوقي عرب دادی و گازل لاملي دگری. به بی والی دکته سلطان. نقل کی دجارت و؟ کدکته اوی بعد جندرما بیگرن. سلطان بیوی کابره دادنوسید دلیه نتان گست؟ ایش قربان گستم. لا شرکان منده هرچند سربازی عرب د جیران زور لخومن خوشتر د جیان کاریان پینه کړدن لباسیان بودکرین پولیان یاند دا و بلای موصل دا برید کرانه وا ولاتی خویان جګلټ فنګو چک هیڅ چتیکن لا کلک دوجمن نه د کړدوه مله باقی ماموریت درا یک کپچټه گلالی بالکاتی اوثی او اسبد لبرس هندمره کس ناویری بروج رایوزي بم دې بوت د بم کوستانن قلاوید کمو اگام لیدبه. اس پیبر لا پایزی درنگدا ملا باقیم و وتی اس پکتم لبو فروشتي به پنچ کله قند او یشم بدشلمه خواردو من شوتم ای بسندانت به کومل اغاوتی لای دوک حاتبونه بارزن بارزنی فرموی دغل اوانه دنیرم کچاودر بیو نهیالی یلی کیاشه لنه خوینده بنینه و نیو روجه گوشت منحبو سفری کی خامی درودریج راخره برزنی پالی به اغاوت لهردو هردو بر ريزبوبونو دستان بوخوردن برد مار کی جنګیر لاموایه میټریک دریشتر ده بو بنا وراستی صفر ده راست بو اوسر. سر برو بارزانی قط یک لاغاوت نمه هم حالات وتم بیګریم او بیکوجم فرموئ مار لپیش پیش بارزانی لید او بر دکی پالو پشتي بنجکرد ور نه و نه دکه زور به خجالتی قرانه دبی او بزنین ځانین کله بار ځان جګل کور مار کمار کی سرسې سوچ پیسو بورل کیکو لایکل کی زور نکوژن کو سما هیڅ مارک ناکوجن نخوازه ماری رش کا پیو ناده د زول ملان وکشله آزادانه اگرو و دکاو من دال گالتې پی دکن وک اسباب بازي راوکويش بتفهم ناکن کولا پیو ناترسه کګوت یشم بیګرین به به هر بلاوتی فیر بوبو ملی مرته اندازې شوارقام کو پتر رقه اگر اوی بیګیله لپیودان دکوي زور جار لترغه دمګټنو لا شموابو مارګران هر او فیا له دکنو دوای ددانې जाहीरیان دکشن پاشنیورو استریک شیننده م کزور استریک سوارو حوریانی پیاده رويشتین شو لشیوی که بینچیای پیرس رمان بوارد کچن بیر یکی کم قولی کوستانچی لیبو، توحالات بچیا حل گرهین، رگه که یک جار و بردویو جوار بو، جگی واحبو دبو استر نزیک میتر یک خویحالاویت سربردیک، یان باز داتا خواره، با نزیکی سیاسعات سرکوتین، اغاکان گوتین یا مهر چاو من لطوبو دابزی تا امش دابزین، سیرا که ملمان نشکاو حپرون به حپرون نبوین، وتم باورکن منیش هرچاوم لو بو یودابزن تا دابزم بلا موتم اگر من دابزم دلن شریستانیو ترسن وک ملشکان لګالت پیکردن چاکترا لبیرم نه ما چون شو ل رګ ماینو روجې ګیشتینه ګوندی نصرې کله پنا ګوندی ربت کې حاجی ملوبو کا غازی عبد بونو د ګلمان بون شو تا پرشن یورو سبې لو پیش مرگی که هر تماشایی کردمو دیار بو کاریکی پیام هایم خوندو آخست، وتم ها برام چه دوه، وتی کاکا دیتم قند لدم دنی، چای بسر دکی، بی که بخاطری خدا خلقیم ولاتا فیر یو کارمکا لشاری کویا خیاتی کراسی که نیوکولی فاسونی افسری بودرو بوم گیان یکم باو بو، لرگی زور من آراغ دکردو توز دخوارد دگیشتین هردم چومیک کراسم لعوهل دکیشا بیا صابون پاک د و او تامل منده کړ د وشکوه د بو پی نو روزی چې شاته غشت نه لنزیک ده حود بومبای یک تونی پیداد را بو پنځه جن تقیب نو خطه مالک نه ویران نکرا به شولول بر حیوان یکونی وحسارک مابو کرابه جګی اغان لګوند در کوتم 20 دقیقه رایوشتم توشیکانیو زرخوشو زورخوشو بسپیندر در هنجیر کم پیدا کرد، داد گوت خیواتا، هایت مو گوند، وطم جه خوی شوانم پیدا کرد. حسیر یکی نیواشرم لناو مالان بردو، شوانه تا درنگ در پیشمرگه رمده بوارد. وقتی خو داشو مو بندار هنجیر، حسیر رایخو سنیر برد. بیانی کچا امحال دینا، دنیا یک هنجیری زردی زلامی گیشتو، چاویان لیدا دا گرتم. لپه لو چرم د خواردو او ساده چومه د موچوشتن به ان یک بفیتو او وی شوانیک و خبراتم کاتب مرلا ګولکا پاروکا حوارم تکرد وتم هو کاکا شیرت 100 من جهانجرد بدامه ای وشوتی نا والله چمنه تی بده شم حاتم لنو ورانه دی دا ګر کترې څیر وکش سورم دو زیو سرکې نه شوان هر دیتی گشکبو گرژه پر کرد لشیرو برده که تنکمه لسردان او شیری کلاو به هنجیره و سلطان رومیش وایرا نبوارده کراکی شاز سالان بنایو ملا عزیز دوکی کباب باوکی سعاد ساز بو لطرسن حلات بو لگوند خزمتی اکردم ملا مصطفى پیوکی زور به وفا اگر دلن وفا دنیا دا نبوه یا نماوه للای او بتاویه بو ما کلا سر آمو فادریش زور جاری زیان دیتابو. بالامدستی لهر برنده. کابراهیج بنایی تاهر حسن ل سال 1950 لجندی بلابته مدتی حاکمی برزنی اعدام کرده بود. برای بنایی حشم حسن اقراوی با وفاداری با تاهر زور قدری لیادجیرا. عبدالعزیز حاجیملو دوستی برزن بود. مال شاخی بریف کن ل سر روان مال حاجی ملو بونت خوشیستی برزانی و با وفاداری با عبدالعزیز ملبنده که گوریان پی سپیره او تولایان با لما شیخ بریفکان کروه تاو گوند سوتاو دنشتوانی اواره کروان. غازی حاجی ملو لویکی زور نترسو لشار ازابو. پیم خوش اوشتان باسب با باسبکم که 27 هزار دلارم پول هی نابو. خبرم با کسی اک نرد که دولار کن به او کسی جاشی دولت بو، بلام لبن و دگل من دوست بود، خبری بو نردم که دولار به دوست و هفته نرد، خبری که دیکی نرد که دولار بوده فلس، و تم بیواره و دبو بوخون بچ ملای حسابه کور گرم، راشم سپرده بود کچندی دستی دکوی بوزوی رانکو چواغب کرده پروجیکټ د ګلدې پښمرګې براو دشت ورې کوتين نیو وروي چې زورګرنبو لدم چو میک لمانده هر کسه بلاو بوین ملاب کین دیتم یو دنیا توترک لو برچم هيا جلکانم نه بن یو بروتی توترک خوردن لپاش تا ویک دیتم هر وا پښمرګې مزور یو دسل سر په لپیت کې تفنګ را پکو پکویانه ل نیو توتر کانه و هرام کړ چتا نه ای مالت آو دان خواهی زانی ویت من رفاندو یا نه او دو ساعته بشوین تو در رادکین. دکین منیش ویتم که که تو ترخ زور خوشه لبیرم چوبو چندم پیچوا. دبرون اوله روتم تاجل کند بردکمو دبو پاش نیوشو بچین مالی او کسه چون تا او دم عراقی میوانم چون مالیانو مریشکی سور و کراو بپی فیلان بو بعد بیات ویتم گوتم میرم توکلنا الى جيبو يا فرسان وتينا من بو جاش مال فرسان بيويكي لا بو مرزايبو لبغداد وي بو بو مواسطه حقوق مانگيكم زياد بو سند بو حواله حزبش بو بسرتوتي تو توتنو پر دکیشی دوای جگر بکو حقد نبه دانشتوا وتم کاکا پاکت جگرن بو بینا هر راست او بو دو گلوسی جگرهی گریوون ای بو هینام لبرخو اوووتی مالی او جاشه سکبابانه هر بوتو باشه حساب من کردو و دست بو زومور گرتو باقی دینار عراقی لقراری دولار با دوست فلس اوی که پارکی دو گرر اوووتی وامن لگیرفانی خوم سیست دینار دادن بشورش او برا میداد و کاغازم دیا گوتم که دلان کبرایی که گوندی چود پیناچی یک لبازار گوید، دو شاوته یک پیناچی اوی کوشانی داوته، نه نیتی کشیوه و خواردوید، پشن و توی نه لی کبرای کرده نزان بو، دو شاوکت خواهی نید، منا مصطفی بمنی و توی نه تو برنجانم، چنجار اک رو توپوته اشیرت زیادکی و توی انا با دستی کت پیدا بینین، نمیشتوه، تو دولار ده به دوست و, و دو فلس، کا اګام لنرخ هي یعنی د گل او پولایټو په دیاري سیاستو 24 دیناري فرقه رونی خون د سری خون حل دسوي 829 نه چې بلې هزار فریو ده هر کناوی زیاده کی 20 رنگی پر دی زانی چن درو خوانه ناسن د میته کالو ملي لسوندنه کا من و مخلصم کم واب چی زور برازن پیسن نزیکان مکو فرمي 50 بارش جنم 12 تنکرون و گلیکیش نیس خو دا نوالتن بولنرم بلانت کادلی کم و مله وتم ای مالت آوا گوندی بالته لجه و رگی سی 4 غ ساعت بو عبدالرحمن قاضی رشاد بالته مهندس ناجی بالتا ک دکتوری از میشګه حافظ مصطفی قاضی مهندس لویدجیان شوانه پاش تاریک خو کردن ملیچی هم دگرتو دشومه لین با قصه قور رامان دبوارد وفیر بو بون لیفه منیان را دخست تا اگر درنگ چوم جمعه بی شویگ لو شوانه لخواستم روانیم کابره که بلند بالای باشنق تفنگ بشانه و لکولانه که بالتو را دبوره دنگم ده چی؟ ویتی؟ از غلام، از جحشم ویتیم کور را باش بکا داوره بزانم هاولان موتیان بله او جاش یزیدیه، پیاوی چاکا. هر چیک من بویه، لماسل بو من دکره، پیلاوکانم شکل بون، یعنی لاستیکی ترومبیل سریان ببند چند رابو. و کالی خو، ببند بلاقوه دا پیچران، همو روش دبو توتاین کم، خوارده بون پاشپانیم بریندار بو بو، وتم کاکی جاش بوزوی غان کو چوغهی که خط خط بچنده، وته چواردینه وته مدی کوشی نرم کتانې کا ورزښکر د پیډکن وته دینار یې یان کم تریش وته بداو پی زیناره برو او دوانه وب کړه پاش څوار روز رانکو چوانخی به چګ د نرد بو دینری کی د قلبو وته بوې کوش کم دس نه او امشو د بیا بچینه شر د گل ایوه بن بخشن ل دا جا و امینم پیزور سیر بو خبر مانور گرد که چندستون دولتی و جاشی زور به چندجه و هجومده کند در با خبر به همون که کانی نوچک و حوشیر بند من بر یارم ده خبر به بند که خوش برم بر روش سفر کردن لبر تیاره که همیشه به آسمان و خلیان دخوار ندکره در سر و دو پیش مرگه که من سواری استر بوم رویشتین تا گیشتین بند که پیش مرگا. هاتن حتن به پیر لیستر در بزیمو چوار تیاری بومبه هاویش من وقت جندوکه گیش نسر زنبورم بوخته دنیا بو بتوز و خوالک هر تاریک دهد صد بر خوال من بسروچهو حل پر جا هشت بومبه هاویشت بوینه بلام کس من لبریندر نبو هر توز بو برز بو بو با براستی پیشوازی اکی گرم بو لبر خوالی چرو و من رگه کنه بن ارزک من نده دوزیه اویش زور در وو پاشتا یک چوهل غلافی نو قرخ قرخ کردن او هات و د مو چامنشتو چوینه کنا رشو وتیان چا بو امرهاتی امشو چوینه او بری بشی عربی جاش کامیون یک منبر کرد و 16 قلو همو درمانی درمانگه کلو همو درمانی درمانگه کلو بو و پات چتفه مو دمانشه زور کلو پلیتریش خوان کامیون مننه و هتا بن او گرده کامیونه که من پیش روش تو تا 80 دینار جای است کیف؟ گوشت مر مشایا بیتون آخش نیو روزی کی شاهنمان کرد؟ شاید دشمن لای شمان خیا و حجمی کرد بو پس و نکانی پیش خافلگیر کردن پیش مرگ یک بحریناو رادا پره دشمن یانگیش تو تسر هر آدکاو پیشمرگه دیندستو پش دوسع شر دجمندش کنن. بحری زور با برینداری هین و خورکه. باسکو سنگو سرو چاوی پیترابو. یکی گوتی لوانه نجی لبن پرویان و بانگی کرد. دمرم با قربانی کردستان بم. امن زربتی که گورم لدجمنانده. خمی خوم نیا. روز یک چند پیشمرگه یک لدور یک دانشتبون قصه انا کرد. یکی انهستا و بانگی کرد. سیده هجار خوا حافیس. من چی دی پیش مرگ وتم برم کیاد لی آشند وی، با خوای نیال این بروی لسرچیار وی، وی سیدا، آوان بسی کن، امن نوم قریا قوز دنخا تو این صافد نیومن بور شهید دس آدای شون قبل دکم لسر قبر بنوسن شهید قریا قوز دنخا منش پیامد، کاک مره، لعنت لبابی آوی بود بنوسی شهید. بگرانی عزیزو خوشویست، لگل اوپر ریزو خوشویستی من لیر دو بمشیوی حتی نو کوتای بشی 66 خویند نوی کتیبی چشتی مجیوری هجاری مکریانی. طلبه شگیتر در پیتندگی نوا همون لیاکتن شاد و بن.